حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا روز روزه بهتر علا کبا دارته چون بلدی بخندی و چشم دل به بازیم با ارش دل به بندیم که دل به پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواه که درب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. خدا حافظ. سلام خدا حافظ سلام علیکم خوبین خوشین سلامتین هفته چهلوم هفته آخره فرنامی رادیو پس فرداست با شما هستیم و بعدش دیگه کور دل تی دگ بینی نشان رفتم که رفتم والا وو که رفتم بیا بله رفتم که رفتم رفتم چرا این غات بکنی صدرو؟ یعنی چی؟ رفتم که رفتم دیگه که رفتم حالا رفتم که رفتم حالا فدا سرت اون که رفتم حالا مگه چه گلی زدیم به سرت اون که رفتم بر رفتم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 همین موقع شعری گفته را جبین که این برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو نرو نرو نرو تو همی من نمیتونی دعویم بیادی نرو نرو فاشید نرو نرو نرو تو همی پوس میری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 همچنان باقی است با تشکر از شاعرمون که آخرین شعرشو برای رادیو پاسوردا سرودیده این هفته هفته پایانی رادیو پاسوردا سیعنی یعنی هفته ای که ما تو روز دوشنبه به برنامه هزارم میرسیم و روی همون نقطه توقف می کنیم تا این اولین و آخرین برنامه چهار رقمیمون باشه البته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 بریم سراغ خبرها آقای خامنه ای که بعد از انتخابات 7 اسفند کلاً رفته بود سراغ کليگویی و حضور پرشور و رأی به نظام و این و هیچ وجیچاره‌ای به نقشه پیروزمندانه انگلیسیا نمی‌کرد آخرش دیگه چند روز پیش دلش, دلش طاقت نیاورد در جمع اعضای مجلس کبرگان مستقیم رفت سر اصل مطلب و به رأی نیابوردن استوانه‌های نظام اینجوری اشاره کردند و خب البته در همه انتخابات ها بعضی رأی میارند بعضی رأی نمیارند الالا گوناگونی هم دارد البته بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مثاسی به شخصیتی اینها پیدا نمی بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور اونها بهره مند می شود نه اونها آه. از حضور در مجلس خبره بله بعضی هستن که کلا مننت به سر مردم و مجلس و نظام و همه میذارن که توی انتخابات اصلا شرکت میکنن واقعا اینا رو باید یه جوری مثل خود رهبر از انتخابات مستثنا کنن حیفا به خدا حالا این بعضیا چی هستن الان میفرماین امثال جناب آقای یزدی و جناب آقای مصباح اینا کسانی هستن که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشن مجلس وزانته بیشتری پیدا میکنن نبودن این ها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه بله برای مجلس خبرگان این خسارت هست نبودن این ها آخه چرا خسارت میزنین به مجلس خبرگان یا خبرگان یا هرچی که هست خسارت میزنین دیگه صدای رهبر هم در اومد چه خسارتی؟ زدین کلن جلوبندی مجلس خبرگان آوردین پایم میگین چه خسارتی؟ آخه چرا تو انتخابتون دقت نمی کنین شما؟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 اون تای چیتمان تازه فیسبک رو تماشا کرده بودم در مورد سامی همون که تو تبریز زندگی می‌کنه آقا بالاخره چی شد سامی می‌خواد منو بگیره یا سعید با. مرسی فضا سامی جان بیا تکلیف دخترم رو مشخص کن دیگه سعید جان اجازه فکرم. بده شما بعد فکر کنی اجازه جان فکر کنم بعدش تو الان برنامه دواله اینجا می‌کنم سعید و سامی شواری نداریم. سعید انسو سامی آنسو چطور؟ نه، کدام یک پیروز این میدان خواهد بود؟ سعید یا سامی؟ <متصر> خب، کدام یک آیا واقعا پیروز این میدان خواهد بود؟ سعید که کارآموزی داشت، سعید سلام خوبی؟ سلام persian خوبی؟ خوبه. ممنون، کوچتیش سامی رو؟ والا دلم نمیมา. خب چه خبر از آبا آبا؟ جان الان نقطه ایران بزنم به تختی چیزی و 10-11 درجه بالای صفره ولی اگه هنوز اعتراضی دارین و فکر میکنیم که این هوا سرده خدمتون بعد عرض بکنم که توی اسکوای تحقیقاتی همین الان توی قطب جنوب دمای هوا 49 درجه زیر صفره او او او او. برای اینکه بتونیم بهتر تصور بکنیم این دما یعنی چی باید خدمتتون ارز بکنم که خفن‌ترین فریزرهایی که ما داریم یه دمای هلوش 20 درجه زیر صفر دارن حالا ببینید تو اون منطقه کره زمین که دما منفی عبره. 49 هستش چه خبره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 Oh خالق یعنی دیگه ها و آدم فضایی ها به ما زای میزنن روزای آخر. ببین دنیا به کجا رسیده. من تشکر میکنم از همه جور همه گونه شنونده ای که ما داریم انسان ها آدم فضایی ها ربات ها کلان همه و دیگه از بزرگضورتون که بله دیگه قصه نخورین ها این هفته به اوننسبت هفته پایانی برنامه ما دیگه موضوع برنامه هم اول برنامه گفتم پایان انتخاب کردیم موضوع این هفته اون پایان دیگه همه چیز رو توی این هفته آخر میخوایم همه رو با هم ست کنیم دیگه هی بابا эй بابا یعنی شوخی شوخی رسیدیم با هفته آخرا کی فکرشو میکرد بعد 6 سال دیگه شده دیگه ما میخوایم همچی استوار با صلابت چشم در چشم واقعیت بدوزیم و امروز در مورد پایانهایی صحبت کنیم که تلخ و درناک هستن البته نگران نباشین پایان های شیرین و خوشمزه و دور کردن خاطرات خوب و اینا گوششین برات فرد و پس بردا که دیگه دم رفتن درنتون شیرین کنین با تام کام تلخ تمون نکنین برنامه رو ولی فعلا عل الحساب یک سلام تلخ میکنیم خدمت همه اون عزیزانی که توی زندگی بارها و بارها طعم تلخ پایان رو حتی شده در حد مثلا گاز زدن تای خیار چشیدن و امیدواریم که هر پایان تلخی که تجربه کردین سراغازی برای شیرنی های بعدی توی زندگیتون باشه و هیچ کامی اگرم تلخ شده باشه تلخ نمونده باشه برو بریم شهرام سامی که کلی تلخ‌خسیدی مونده و در موردش صحبت کنیم گر که نرقصم گل من دیر منویز ساقی ها پیک پیک پیک پیک پیک بریز بنویس هر که نرقصد گله من دیر منویز کس ندانت چیست امشب امشب ماجرا پس بدون مطلی نوش کن بادرا بایی من و تو بخال لبود بعد سبا عیش ایشون نوش دوری نبا نان و محتاج و طبیبیست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 باختی که تلخیه هدیه از آیان در آدابی یک نیکار به هر خدا هفت خدا مون منو به هم نزدیک میکن، گریه ی دست جمعی حالا منو به هم نزدیک میکن یادش ای... بخیر واگن ها ها یادا چی خاطر ماطری میخوای بچم حال ندارم آ. این کلاغا نیمدن اصلا دل و دماغ ندارم حق به اه... شرط تخنم خودت هم داری شکی کلاغا میشید دیگه خب پس داریم شبیه هم میشیم یواش یواش ای خدا <تص> <تص> بخیر واقعا یادش بخیر ها چی بابا بنال بنیم چی میگی یاده حبس حبس؟ تو مای حبس شفتم آره بابا اصلا من زندون چی میرفتم همه زندونیا میمدن تک آه... تک رخصت ای دوباره شروع کرد. ببین تو خالی نبندینم چلا. ای فکر کنم وباش. میرزا میرزانی بگو برم جلو تو رو ببینه میگره ها. نه بابا فکر کردم که علاقم بود بلش گپشته. گپشته. حالا گپش ببینم. چیکار در باهاش بابا روانه. ای. داشتم میگفتم ها. خب گفتی که تو زندون میبردن دلغک. بازی داد میاد زندونیا سرگمش. بدبخت بیچاره. من اعتبار محبس بودم. اسمم کی میومد؟ همه غلاف میکرد من همیشه فکریم این فیلما رو تو کجا میبینیم لباس ما تعریف میکنیم خدایش ماهواره داره اینا رو. من میرفتم زندون، ما که حبزشون تمام شده بود، اصرار میکردن آزادشون نکنن. میگفتن میخوایم به خاطر این مرد بمونیم و حبسی بکشیم. عجب اسکولای بودن اون‌ها. آدم تا مات ایودا. آدم تا چیه دیگه؟ آمیتاش برو کنار، برو کنار. من بلالم چلوت رو می‌بینه میره. کوس. بابا تا چلاقه نمونه پارک خودم بزرگش کردم ای خاک بر سرت انا با فکر کردم چیزی داوود چیزیه کوشالا گناه دیگه ببین بالا اونارو درخت نشاس اونا اون اون ماشینی مسنجوچ ماشینیه اص خدایشت داغونیا بیا یه برق چیزی بذارین عقلت برگرد سر جا شای نگاه کن آمیتا داره این پاوم پاوم میکنه علی میچی بیا بریم با هم لامه بدا برخصی نه نه یه چیزیش هست بگم مونمو بی... باب... ارمیتاج مونم بی... بی... بیاخت بیشه بیا بی آرمیت چقدر میکنه؟ اوه اوه اوه چه فشاری آبا اوه اوه جرا اینجورشو اکی بونی؟ اوه خوال چه بر سر بکنن نگاه کن چند زد بیهی آره رو منم پاشید بزن من بزنم این بره گامشید نزنی یا نزنی یا آرمیتا با این کارش برامون پیغام فرست داده آره ببینم بری سر کبر باباش اوه آرماش، آرماش، آرماش. باید ببینم بابا حالم دیگه آره. از این پارکی به هم میخوره. دیگه تمام من پامو این جن میزارم. آه. آه. برم زیر دوش چند زد به همه ی اومورات. آرما تا، تا جوناب. چی میخوای؟ چی من بگی تو با این کاره؟ آرما تا. خودی چر رت چردي آت. تمام کاره. خدا حی. رو به بر گردن باز کللاقا به یادم باز میادون کوچ باقا هنوز تو اون پوچ رو عقاقی دلی که کند بودیم مونده باقی هنوز تو اون پوچ رو نقاقی دلی که کند بودیم مونده باقی ا قابل و من یر دل دقل مسیر دل, دل نبودم اما گه اوقل بودم من سلام دادش دو پربیز منافی خسته باشه آقا من با تو دو سالی هستش که قار و اه. پیغام پیغام نمیذارم این الان بعد از سالا دوباره من برگشتمو دیدم این برنامه تو رو به اعتمادم گفتم یه پیغام بزارم من حرف من این هستش که داداش تو چه مردم اذیت میکنی داداش تو تو مجارستان اصلا غیر رادیو کار دیگه بلدی بکنی مجورست. تو زبون فارسی رو کار بلد نیزی که تو خارج میخوای برگردی ایران داداش اصلا نباشی خدا به شما داداش خوب کردی زنگی زدی دادوش مجارستان چی بود داستانش داداش مجارستانی سیم اینجا چه کو باشه داداش کی گفتی اینجا برای ایرانی کار نیست کار ریخته داداش نگران نباش به هر حال مرسی که زنگ زدی داداش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 مرگ؟ بله دیگه یکی از اون پایانایی که ردخور نداره دیگه یعنی همه میدونیم یه روزی سراغ هممون میاد اما خب هیچ وقت بهش فکرم نمیکنیم یعنی کمتر فکر میوی اصلا آقا ابر... حالتا چه کاریه یعنی آقا یعنی فکر کردم به مرگم یه ذره آزار دهنده است آقا من خودم امتحان کردم 10 دقیقه نشستم تمرکز کردم رو مرگ یهو دیدم دارم یه حالات عجیب عرفانی و اینا داره بهم دست میده تو این یا برم دیگه کم کم کمو بر بچه‌ها دست بدم روبوسی کنم و دیگه بعدم برم یه جای خودمو خودمو گم و گور کنم چون خب اگه بخوای خیلی رو مرگ و پایان و پایان و اینا فوکوس کنید او بعید نیست ببینید عجیبه چیزی که اصن همه این کارهایی که ما داریم می‌کنیم واسه چیه اصلا چه کاریه اصن آخرش که می‌میریم دیگه خب بریم همینجوری یه گوشه بیافتیم تا خودش تموم بشه همه والا اینه که شاید بد نباشه این یه مدل پایانو خیلی بهش فکر نکنیم به خدا از دست میرادم ای بابا. آقا عوض کنیم داستان و مودو اصلا عوض مچین فرف رو مرگ چی؟ این چی بود اصلا؟ نویسنده های ما چیز های می مینویسنده ها اح اح اح اح. والا بعضیا نمیدونم چرا وقتی با آدم مشکل دارن به جای اینکه بیان خیلی دوستانه گپ بزنن مسئله حلشه یهو کلان قطع رابطه میکنن پایان دوستی سعیده یکی از دوستای دوران دانشجوییم با هم هم اتاق بودیم یه روز دیگه تلفن منو جواب نداد نه موبایلش نه خونه‌ش نه حتی وقتی زنگ میزدی سر کارش میومد پای تلفن اولی گفتم شاید گرفتار نمیتونه جواب بده ولی هی که ادامه پیدا کرد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 کهتام آه آها حالا یادم اومد دختر داشتیم در مورد تو حرف میزدیم گفت میدونستم گفتم نه یعنی پسره میخواست بهش مشاوره بدم چیکار کنه که دل تو رو ببره دیوونه یه حوزت زیر یریه گوی رابطش با اون پسره رام همون مقاب همین دلیل علکی پایان داده بوده چی بگی آدم آخه قبل اینکه به رفاقتاتون به عشقاتون پایان تلخ بدین یک گپی بزنین شد مسئله حل شد بخنده؟ بخنده؟ دلن؟ ما در پشت ما یک بسیار جدی استماعات پیدا رادیو دکک سوبان نگه دیگه می می همین تمام ظورمونه یکی دیگه از پایان های دوست داشتنی پایان دوران حبس و زندانه از کجا میدونم؟ حبس کشیدم نبای شاید چدم رفتن درست میکنین ا داریم راج پایان ر میزنیم خو ببینم یه بخشیشه دیگه ما درست نخوردیم دونه گندم ولی دیم دست مردم که توی این فیلم ها ندیدین این زندانی ها همشه روی دیوار از این چوخت ها میکشن روزها رو میشمرن. اینا دقیقا برای رسیدن به اون پایان شیرین و لحظه آزادی دارن لحظه شماری میکنن دیگه دقیقا همینه ما کاری به حکم نداریم رو پاقد مال محکمه است اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخده و زون میکنیم واسه کسی که آزاد میشهد این چار دیواری که همه دنیا چاردیواری حرام مرتزا علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش دوازده سال و کشیده رجدانش بالاتر از این طول است که بود. سلامتی ستن. ناموس و رفیق و وطن سلامتی سکت زندونی و سرواز و دیکس سلامتی باغونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره سلامتی آزادی سلامتی زندونیای های بیملاقاتی آخه آخه ابلسه همیشه همینجور نیست مورد داشتیم طرف آزاد که میشده میدیده بیرون زندگی سختره چون مثلا کار و شغل و خونه و زندگی اونا نداشته بازی خلافی میکرده دو برگرد بره زندان لاغلی یه بالا سرش باشه یه بر خوردن داشته باشه دیگه شاید بعضیاتون اون کارتونه دهکده حیوانات رو یادتون باشه گربه ها تو زندان به خوبی و خوشی زندگی میکردن اونجوری دیگه بعضی هم ظاهرا اون تو راحت دیگه چی بگیم ما والا؟ اگه بعد سالها حبس دوران محکومیت داره تموم میشه اینقدر تو زندون موندی کسا نمیدونی آزادی یا یعنی و بعدش چیکار باز کرد همه الان تیلیف بزن محسسه حفظاوران تا سه سوته برات گردونیم زندون جا جایی جنس تو جای پرخطر و تابلو با درآمد توپ و دستگیری تزمینی شیف غاپی، زنبیل غاپی، موبایل غاپی و باقی غاپی با موتور بس با موتور گازی. معرفی منزل و معرفی سهجهای ثروتمند بالای 120 کیلو چوکوشین کار بر آدم روبایی و باچگیری. داداش، فرمایش. ببین یا باف خودت بیا والا تو صندوق عقبم یا منو بندازم صندوق عقبت ببر تحلیلم بده. و ایجاد مزاحمت برای نوامیس گشت ارشاد مستقر در مکان‌های شلوغ در این انجام وظیفه. وای عیزه خانوم با شماام جی نیاشبات چیکار میام تو بنه. با مؤسسه حبسوران در عصر وقت دوباره به سندان بازگشته و برای همیشه شر کابوس آزادی پیدا کردن کار مسکن و هزینه های معاش خلاص بشین دونال تو که هفته پیش وزد شدی پت چه سود برگشتی؟ یا تلیف زادم به حبساوران دیگه نفهمیدم چطور شد چشم باز کردم دیدم اینجا ایوه خوش چومدی به خونه خاکتی بازگشت سری و آسان به زندان فقط و فقط با مؤسسه ی حبساوران با سلام آخرین بیست و شنبه شب را ضمن اعلام که هستم اگر میروم اگر نروم نیستم با مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می محکوم شدن ایران به پرداخت ده میلیون دلار به قربانیان و حملات یازده سپتامبر توسط دادگاهی در آمریکا. با ها در مورد اینکه احتمالاً چند وقت دیگه ایران باید خسارات آسیب دیدگان از ابولا و ایدز و جنون گاوی را هم بده با این حساب به قاچاقی بودن 90 درصد پوشاک وارداتی به ایران و نظر کارشناسان که بابا این پستای بازرسی مرزی رو کلاً بذاریدون 10 درصد هم بیاد توی دیگه چرا انقدر تبعیض قائل میشید و از حال نظر رئیس جمهوری مجلس بر اینکه برخی توانند رفاه ملت ایران را ببینند و پاسخ فحالا بیرفایی که داد شما رفاه ایجاد کن ما با زربین هم کشده میبینیم اش اصلا شک نکن مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشهور خبرها با همکارم با با سلام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 به سراغ رونق دهندگان اقتصادی رفته آنها را با روش های انقلابی، تزریقی، تنابی و یا با استفاده در شیاه برنده به صورت زنجیری در جای خود نشانده برای دیگران هم درس عبرتی ایجاد می کردند پایان محشروه اخبار پس یه باری که این کار رو انجام میدیم، این کار رو انجام میدیم. و این کار رو انجام رو در میدیم. آخرین این کار آروم چی چی می میگی آقا چقدر آخرین آخرین اخرین میکونی شلون آخرینه دیگه چی بگم بگم اولی نه خیر دیگه انقدر شلوغش نکوز طاره نیست که حالا یه چیزی میشد بعده ما در چی میگی با تموم شد سرحن. یعنی هفته دیگه این موقع عشب. دیگه نه من اینجام نه تو آقا حسن دیگه هفته دیگه تاتی لاتسا ها... من که آماده باشم ها در حالی خدمت رسانی به هم میهنا ها که میدون با منظور همین میکروفون سر حی ب... تو میتونی بدون این میکروفون به زندگی تدابه بگی؟ بله بنده تو... به جای میکروفون اسلاحه دارم و خیلی هم دوستش میدارم خب سرهنگ من چی من چی که دارم خلی سلاح میشم سرهنگ سرهنگ میگم من طاقت ندارم من هفته دیگه با خودت ببر مهمولیت سرهنگ بریم, بب... بله بریم شما هفته دیگه هیچ پاستی سازمانی نداری که بنده بخوام ببرمت مهمولیت سرهنگ گزارشگر نیستی که آقا این بود ما؟ سرنگ از اسپ افتادم از اسف که نیفتادم که گزارش کنیستم ولی اکبر که هستم که سرنگ ببین من نمیفهمم شما چی چی میگی سوال تا باکو من میخوام برم آقا کار <تصفيق> باش باشی کشتی مالو ما الله خدمتت میرسم میگم مثلا این قضیه این رزا آنلاین چیه؟ بله اموته همی طرقه به و شاندیزا میگی شما بله همونی میگه هره هره. بله ایشون در منطقه ای طرقه به و شاندیز اقدام ببرگذار یه مهمونی های شیطانی میکردن آه. که به صورتی مختلط بودست توش مشروباتی الکول یا قرص های روانگردان مصرف میشدست که توسطی هم کارانی من دستگیر شدن خب دقیقا جرم ایشون چی بوده سرنگ ایشون از طریق شبکه های مجازی مهمونی ها رو را رامین داختنا دخترانی آنیمه صومرا هم به دامی خودشون میکشوندن آقا جون. سرنگ من یه پیشنهاد به شما بدم بفرمایید نیرو انتظامی همیشه پذی رای پیشنهاد شهروندانه بفرمایید آقا ببین به نظر من شما باید یک اداره مبارزه با پارتی و مهمونی تاسیس کنید بله بله به نظر بنده پیشنهاد خوبی میاد ام. چون میاد خیلی تخصصی به این مسئله پردا. خب برای و... مسئولش چه فکری کردی سرنگ؟ والا من که نمیتونم خیلی وقتم پوره اس و فهمشه دیگه. سرنگ <تصفح> کی من کارم رو چیکار کنم؟ دفترم کجاست؟ چی, چی شو؟ <تصفح> کارتی چی چاست؟ دفتر چاست آقا؟ خودت گفتی الان اکبر تو در این کسی هستی که میتونی معاون امور مهمانی ها و پارتی های نیروی انتظامی بشی مگه من, من گفتم من هم چه حرفی زدم؟ چنوندگانه عزیز شاهدن چی چی میگویی شما آقا؟ ای نکن دیگه. اینجا داره تموم میشه من بیکار میشم سران. خب باعث شما کی میهمونیات بذتون. بله خب من مواظب بشین هستم دیگه. جون وسر. یعنی چی چی آقا جون شما چرا تارت تا میگی؟ بات. دوباره حالت حالت شد از شما من دیگه کاری ندارم اینجا آقا جون. باس برم شب ایگاز کاری مأموریت دارم. نه سرنگ نرو وایسا باهاش. عجب آدمیه. باز بابت توجه شما تا شب و برنامه ای گذاش و پروژام نگی گذا خدا هم نگه آدر سراین فرمان نامردی از این شی تو تو اگه بیکار شده بودی من می اینجا جای پایه میکروفون مشغول بشی دلات. خیلی بیمارمیاد ما ایسا سراین میکروفون چی سراین بارا آقا این قرارمون مون نبود سری بخونم این خرال نه نه نه این قرارمون نبود سو بی خبر بی من خسته شم که تو وی هم سفر بری نه نه نه نه این قرارمون نبود سرنگ من رنگ شب بشم سرهنگ سرنگ تو سر سپردشی من جون به لب بشم سرنگ باور نمی کنم سرنگ این تو خود توی سرنگ؟ این تو که از خودش بیخود شده نه این قرارم نبود تو بی خبر بری من خستشم که تو بی هم سفر بری نه این قرارم نبود چابشان تو این تو این تو, تو که از بای فرشید فی سلام علیکم بنده پنج سالی هست که شنبنده برنامهات ها نستم داشتن که اسم این گوینده هایی که جایی اکبر میکروفونتالا حاج آقا نشت المومنین این ها رو بازی میکنند و صحبت میکنن هم به ما بگین خوشحال میشیم اونها رو بشنستیم خدا حافظ اکبری که اکبری جناب سرهنگم که جناب سرهنگه <تصفيق> برحال تفضل این هم که حاجه ها اندال مؤمنینه شما به نظر یه پنج سال دیگه جوی ادامه بده فکر کن به این قضیه اما خانم آقای دکتر خانم آقای را ظاهرا شیخ حسن روحانی حرفای یک دو روز پیش هاج آقا مسباح که دولت رو به نوکری آمریکا محکوم کرده بود شنیده که امروز خیلی همچی بی اعصاب رفته پشت میکروفونو اینجوری حمله کرد به مواضع دشمن غیرفرزی بعضی بعضیا که لب بخوام باز کنن یه عده میترسن چی میخواد بگه نکنه میخواد به من توهین کنه بون بغلی توهین کنه به طایفه من توهین کنه به خانواده من توهین کنه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 طلای آیتولا جنتی، آیتولای یزدی، آیتولای مصفا می میفهمه تو مقاطع مختلف، تو بزنگاهای مختلف چین بزرگانی میان؟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 چین و بیشتر از همه حالش گرفته بشه باید سب کنیم ببینیم چی میشه دیگه ماشین مشتی منگلی ارزون و بیمه ماشین مشتی منگلی نه بخداره نه سندلی ماشین آخه این زدم با خانومه ای بابا قورم شما آروم باش ای بابا از این توو طرف نمیپرن به همو البته به ما که تیر نداره ولی تی ببین با این که بامپری دانو و اینا سی ای درست نمیشه والا به خدا ای بابا ما الان دقیقه دیگه شما رو پیاده پیاده کنم برن و بعد بردا به خاطر و سوزوش و اینا اسفرس مسفرس و اینا سکته میکنی یه گوشه میفهمی آقا نکن ای بابا اصمتوا متوجه نمیشن ابزی این چی بود شما گفت نباز این حرفا رو بزنی با ناسلامتی چی شوهر تو ببین به من هیچ ربطی ندارا من این زا... نه بابا من دارم اینجا چی ماست خودمو میخورم ولی اصلا رنز میکشم میبینم وقتی این مشکلاتو بین شما زفونادی خواهرم زیغ نزن بابا تو ماشینی ما پرده گوشم رفت تو تشمه بابا ای؟ آقا دست تو بیار پایین نون کردتم نه زنیا نز به خدا بزنی سی شاکی میشم آدم زنشو میزنه اه. اگه بزنی چی با من طرفیا دست تو شما بیار, ب... بیار پایین داداش یعنی تی آخه شرم و خوردن حیار رو غورد دادنو نت... نه اتی چیه بابا بوغ میزنه با بوغش قریدی نه چیزی بجم ببینم میتونید کار دستم بدین شما دو تا یانان بعض شاخه ماشالله هر مثل خروت زنگی میمونید نگاه کن تو رو خدا قلبم داره میاد سی تو حلقمون بموله زونم همینجا باستم اینجا وسط تموم باستم که نمیشه ای بابا میگم نمیشه پسر خوب با ماشینا میان از پشت ذارومون میکنن میرن و حرفی میزن نمیشه داداش من اینجا با نمیشم میخایین تکم به من بزن؟ چی کار میکنه داداش نشگنی دستگیرم خانم زیغ نزن بابا روانی شدم از دستش وای سباب این قوطی الان وامیستم بیا بفرماهر هری اونو پایین ماه کرایی هم نخواستیم خوش اومدین خد زبا چه خب در طویله لیستم برین ما تمومش کنینه اینه بطس آدم این بچه بازی ها رو نهارین تو خیابون دو تاکسی دیگه فکر کردم زندگی خالبازی و احالم به هم خورد از دست اینا Hello, Ellie June, how یه جایی می‌وانی من منافی بگم آ شما خوب بگم بابا گناه داره منافی کارش خوبه که از شما بعید اتفاقا میدونم تصفیه بعیده اما بله. من هم احسانم بله. سلام علیکم خوبین علی <تصفح> جان عمو بودن زنگ زدادن بله عمو جان عمو مرس. جان چرا زنگ زدید اینجا این شماره که من اعلام می کنم شماره برنامه شما شماره خودم که نیستش بله. که تماس گرفته بودید بزرگتر ما هم به هر حال خوشحال دیگه واسه آینده و حقوق ما صحبتی میکردن کردن زحمت کشیده بودن زنگ زده بودن سوتی رو دادین اشکال نداره ما فهمیدیم الان ببخشید نه اشکال نداره اشکال بگین زنگ بزنن به خودتون دیگه <تصفيق> مرسی خیلی ممنون اما یکی از پایان هایی که متاسفانه یا حالا بعضی وقت خوشبختانه خیلی دور برمون میبینیمشون پایان رابطه هاست البته منظورت رابطه از اینا نیست که مثلا خانم و آقایه مثلا یه تیکی با هم میزنن و بعد مثلا بعد سه سوت میزنن به چاکی جاده میرن تو و گم میشن و اینا نه رابطه درسته صاحبی منظورمونه اینجور رابطه ها وقتی تموم میشن پیامداشون تو خانمه ها آقایون کاملا متفاوته تو آقایون خود خیلی هم موارد میبینی که طرف به محض جدایی میپره هوا اینگار داره شادی بعد از گل میکنه میره در به در دنبال رفقای دوره مجردی با شعار من آمده هم وای, وای من آمده هم تلاش میکنه همون چیزهایی که توی رابطه قدیمیش نداشتر رو غورت بده رسمن منطقه مطالعات دانشمندانشون میده که تو این دوره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 به خدا دیدیم که میگیم حالا این مسئله تو در مورد خانوما کاملا برعکسه حالا نمیشه البته گفت کاملا ولی اصولاً برعکسه یعنی خانومه مثلا یه ساعت از جدایی نگذشته به یاد مثلا با هم پیتزا خوردن نامو نمیدونم خاطرات جادو چالووس و سیبیل قیتونی آقا بغض میکنه حالا گریه نکن که گریه کن اما یه مدت که میگذره دوست رفیقام جمع میشن خانمو از اعضای پایین رابطه در میارم میبینی طرف بعد چند ماه ها... اصلا انگار نه انگار که اون آقا سیبیل قیتونی وجود داشته تو زندگیش رفته باشگاه ثبت نام کرده بدن سازی میکنه داخل تیم ملی هر روز نمونام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 پس, پس های آقای حداد عاده. فیلمی کومیدی، شاد و مفرح برای افراد با خانواده و بی خانواده ماجراهای آقای حداد عادل داستان مردیه که هرچند خوب شعر میخونه آفرین، آفرین اما پدر شوهر دخترشم خوب بهش گیر میده حتما نرادش اون رئیس فرهنگستان فرهنگ و عدب کشوره اما نشون داده استعداد بیعدبیشم بدعک نیست من گفتم بلا ما که نگفتیم لبنه، لبنه، لبنه. کدوم در مجره های آقای حدا با شخصیت یاشتا میشیم که متخصص کسب رتبه سییکن برای انتخابات مجلس شهر تهرانه. ولی معمولاً با کمک شورای نگهبان رأی نیاوردنش باعث میشه وارد مجلس نشه آنچه چه و تاسف آبر است این است که در ایران آقایان کروبی و موسوی از طرفداران خود دعوت کردند جدا از حضور با مردم در راه بیست و 22 بهمن روز 25 جنگ یعنی دیروز به خیابان ها بیاین ماجراهای آقای حداد دلرو با همه اعضای خونواده و فامیل در سینماهای مجلس و شورای نگهبان ببینید ماجرای آقای حداد عاده <تصفيق> هلا هلا همه با هم همه بیا جونم اما، اما، اما یکی از شیرین ترین پایان ها که ای مدلشون نخواد فقط و فقط آقایون تجربه میکنن شیرینی پایان خدمت یعنی اون لحظه ای که اون کارت پایان خدمت رو میدن دستت، آخ آخ, آخ, آخ آخ اون لحظه که این کارت پر رو میگیری آخ, آخ, آخ حالا چه اون قدیمیاش که پرس شده بود چه جدیداش که الان دیگه هوشمند شده، ایسی شبیه کارت آبر که آقا فقط باید دور پادگان پامرغی رفته باشی، بالای برجک نگهبانی پست داده باشی و واسه یه روز مرخصی به هر کس و ناکسی رو انداخته باشی که بفهمی لمس کردن اون کارت پایان خدمت لعنتی چه لذتی داره. یعنی ببین اون لحظه اون لحظه فقط میخوای بری تو اتاق فرماندت که حدود دو سال تمام همیشه بدزور زور گفته و برات اضافه خدمت رد کرده بری و این کارت پایان خدمتتو نشونش بدی و بگی جناب سرهنگ حالا بیا اینو بخور و جعبه شیرنی پایان رو بذاری روی میز و درش رو باز کنی و دهنتونو به اتفاق شیرین کنین حال خوب خوبب سسه آدم کین شطوری باشد فرمانده خودش آدم چیز به دل بگیره خوب نیست دیگه. آره دیگه بالاخره نظام سخرکی خاص خودشو داره ولی حتما اگه جابشینی برای فرمانده میبریم باید چند تا جبه هم بگیریم برای هم یا ببریم تو آسایشگاه ببین سربازو بخش کنیم آفرین اصلا خیلی خوبه این پایان خدمت یعنی هر چی بگم من کم گفتم عزیزا میگم بازی خوبه نبالا. میگم با زرگ میشی حالا زن می گیری ختم با زرگ میشی حالا بعددی زندگی میشیا خو خوم سید میگا نپوتم سربازی حالا فتم سربازی رفم سربازی؟ سربازی تو خنده مادر من میشه از اول ببینیم سربازی صدای طبل اشیپور شنیدم سربازی مادر دلنبر از یه ذره شده سربازی دست رو خدت خیلی خشمیر سربازی تو خدمت یه کمی آدم میآریم سربازی, سربازی اما اما اما اما سر بازی خوبه. مرد زن داغی میشی. اولا بزرگ میشی. اولا نزد سر بازی خوبه. کار میشی. اولا سر خوبه. اولا خلاصه تجربه. اولا بله. خلاصه تجربه. اولا خلاصه تجربه. اولا ماله. آقا یعنی رادیو پس واردم یه جورایی سر بازی بودنی شش سال ما سر رفتیم ولی الان پایان خوشش واقعا شبم شدیم از رادیو پاس و بودن کنار شما دو برنامه بیشتر باقی نمونده من و تو قدر تمام این لحظه‌های ناب رو می‌دونیم اینکه گاهی این, گاه این فرصت‌ها دیگه تکرار نمیشن که هیچ چیز تو این زندگی همیشگی و موندگار نیست که گاهی به تلنگری همه چیز عوض میشه ولی من و تو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 به فکر اگه امروز تموم فرصتت باشه اگه امروز نخواد دیگه وست تو رنگ فرداشه دلت میخواد کجا باشی تو این دنیای دیوونه با تنهایی و تاریکی تک و تنها توی خونه یا دست و دست ای عشق برای آخرین لحظه کدوم و اگه آخرین دو به تردید و دل شوره به این فکر کن که هر روزت میتونه روز آخرشه. بدون هیچ فردا میتونه عمرمون سر شه بگو حالا تو این دوزی که واسه زندگی بخشه دلت مغوره یا هر چی هست تو